روزگاری پادشاهی دختری داشت که شهره آفاق بود و هرچی خاصگار براش میومد، اونقدر مشکل پیش پاش میذاشت که خاصگار دومشو بذاره رو کولشو دست از پادراستر برگرده یه روز کچری که از تنبلی رو دست نداشت و صبح تا شب کنار تنور دراز می تصمیم گرفت بخت خودشو امتحان کنه. اون با تنبلی پنج تا نون گذاشت لای بغچه و راه افتاد که بره خواستگاری دختر پادشاه. همونطور که میرفت به جنگلی رسید، دید وسط جنگل دیوی نشسته که شکمش قار و قوه صدا میکنه. انگاری چند روزی بود که چیزی نخورده بود. پیش خودش گفت این بیچاره گرسنه است، خوبه که من این نونا رو بهش بدم که بخورم کچل بخچه نونو به دیو داد و خواست بره که دیو صداش کرد و گفت یکی از موهای منو بکن و برو کچل گفت موی تو به چه درد من میخوره دیو گفت بالاخره یه روز به کارت میاد کچل یه ما از دیو کند و راه افتاد همونطور که میرفت به چشمهی رسید دیدش که دیوی سر چشمه نشسته و از سرما مثل بیت داره می لرزه. طوری که دندوناش به هم میخورد که انگار که چله زمستون اومده کچل پیش خودش گفت این چرا سردشه خوبه که من کتامو در میارم و روی شونش بندازم تا گرم بشه. کچل کتشو در اوورد و روی دیو انداخت خواست که بره دیوه گفت ای جوان نرو یکی از موهای منو بکن و با خودت ببر کچل گفت آخه موی تو به چه درد من میخوره؟ دیو گفت حالا ببر سرر نمی کنی کچل یکی از موی دیو کند و راه افتاد رفت تا به یه رودخونه رسید دید یه ردیف مرچه پشت سر هم یکی یکی توی آب دارن میافتن و خفه میشن کچل چوب بلندی برداشت و برای مرچه ها پول درست کرد. میخواست بره که یه صدایی شنید از پشت گوشش ای گفت ای جوان هر وقت به ما احتیاج داشتی کافیه که فقط صدا کنی. کنیم کچل چیزی نگفت و براه افتاد رفت و رفت تا رسید به قصر پادشاه همون خواست که وارد بشه نگهبان جلوی در جلوش گرفت گفت جوان تو کی هستی؟ چی میخوای؟ کچل گفت من اومدم دختر پادشاه و خواستگاری کنم برای کی؟ کچر گفت خب معلومه دیگه برای خودم نگهبان رفت و به پادشاه خبر داد پادشاه به سلامت باد کچلی اومده دم در قصر و میگه میخوام از پادشاه دخترشو خاصگاری کنم پادشاه گفت برین هموم آماده کنین و کچل و توی اون هموم بندازید پادشاه که دستور داده بود همومی بسازن و و اونو هفت شب و هفت روز گرم میکردن و و هرکس به خاسگاری دخترش میرفت اونو میفرستد به این هموم کسی هم زنده از این هموم بیرون نمی آمد کچلو به هموم بردن و گفتن اگر دختر پادشاه میخوای اول باید اینجا هموم بگیری کچل نزدیکتر که شد نه خیر آدمیزاد از اینجا زنده بر نمیگرده دیوارای هموم از گرما سخ شده و خزینه از آب جوش پر بود و قلقل میکرد یاد دیو دومی افتاد موی دیو و آتیش زد و به یه چشم به هم زدن دیوه حاضر شد که ای جوون چه کار داری چه دستوری داری من در خدمتم کچل همام و نشون داد و حال و روزشو گفت گف واره حکایت اینه دیو گفتش که نگران نباش نفس عمیقی کشید و تمام گرمای همومو توی سینش کشید چی شد؟ هموم سرد شد صبح که شد اومدن در و باز کردن دیدن کچل رفته وسط خزینه و هموم انگار شده سردخونه. رفتن و به پادشاه خبر دادن پادشاه گفت ایبی نداره برینو با سیصد کیلو برنجو 600 کیلو گوشت قضایی درست کنید و بهش بدین بخوره باید همه این غذا رو بخوره اگر نتونست سر از بدنش جدا کنید اومدن و شرط دومم به کچل گفتن کچل دستشو برد به سر کچلشو همینطور که سرشو میخارون یه دفعه یاد دیو اولی افتاد موی دیو و ازلای دستمانی که گذاشته بود آورد و به آتیش اجاق گرفت تو یه چشم به هم زدن دیوه حاضر شد غذاها حاضر و آماده توی سیصد تا سینی ردیفی چیده شده بود دیوه غذاها رو خورد و گفت بازم میخوام خبر پادشاه رسید پادشاه به سلامن. کچل همه قضاها رو خورده و یه دونه برنجم باقی نزاشته پادشاه گفت خب حالا این یه کاری میکنم که دیگه جون به در نبره. بره سه خروار گندم، سه خروار جو و سه خروار عدس رو با هم آتی کنید اگر تا صبح این ستا رو از هم جدا کرد که هیچ وگرنه این بار دیگه سر از بدنش جدا خواهد شد اومدن شرط سواما به گجل گفتن گجل دید که کار کار خودش نیست یاد مورچه ها افتاد. رفت بالای تپه و صداشون کرد تو یه به هم زدن مورچه ها اومدن و گفتن ای جوان چه کاری از دست ما ساخته است کچل گندم و جو و ها رو نشون داد و کواره پادشاه گفته اینا رو تا صبح باید از هم جدا کنی وگرنه سر از بدن من جدا میکنه ملکه مورچه‌ها گفت ای جوون تو استراحت کن و نگران نباش این با ما کچل سرشو گذاشت که بخوابه ملکه مورچه‌ها پشت گوشش گفت اگه امری دیگه نیست ما مرخص بشیم. کچل از خواب بیدار شد. دید بله همون که شاه خواسته گندوم جو عدس توی از هم جدا شده که یه دونم این طرف اون طرف نیست. کچل رفت به قصد و گفت پادشاه به سر آمد. اینم از شرط سفم. دیگه چه امری دارید؟ پادشاه دید کچل از یه شرط سومم برآمده برامده و به صبح نکشیده، همه را جدا کرده گفت دیگه جایزیست من شرط دیگه بذارم تقدیر این بودی که من دخترم به تو بدم ای جوون فقط اینو بدون که دیو زردم عاشق دختر من شده کچل دختر رو برداشت و به راه افتادند همونطور که میرفتن دیو زرد خبردار شده بود و با از اومد و دست و پای کچر رو گرفت و انداخت توی چا کچر دید توی چاپ پر از مرده است. زود رفت و زیر بقیه مرده ها قایم شد. دید که م... چاره ای نداره. باید این کارو بکنه. دیوه چیکار کرد؟ دیوه یه خنجر بزرگ و بلند برداشت و بعد شکم اون مرده ای که رو بود پاره کرد. به خیال اینکه کچلو کشته. نگو که کچل زیر مرده دیگه پنهان شده چند روزی گذشت کچل به هر زحمتی بود از چاه درآمد دیوه هم که دست دختره رو گرفته بود و به قصر خودش برده بود کچل که از چاه درآمد اومد و اومد تا به قصر دیوه زرد رسید دید دختر از حجه داره نگاه میکنه دختر کچل دید خیلی خوشحال شده گفت ای کچل مگه تو نمرده بودی؟ کچل گفت حالا حکایتش بمونه برای بعد من باید برم الان دیوه میاد و اگه منو ببینه هم تو رو میکشه هم منو فقط امشب از دیوه بپرس که این اسب سپا رو از کجا آورده کچل اینو گفت و رفت کمی بعد دیوه زرد اومد پیش دختر دختر پرسید ای دیو تو این اسب سپا رو از کجا آوردی؟ دیو گفت آخه تو چیکار به این کارا داری؟ دختر گفت یا به من بگو یا من خودم رو میکشم دیو گفت خب گوش کن من رفتم کنار دریا، جو ریختم جو سبز شد اسب سپا رو من سبزه ها رو بخوره کمندم و انداختم و گرفتمش ولی مادر این اسب شش پا داره گرفتنش به این آسونه نیست این اسب سپا از مادرش تندتر میره و تیزتره اما اگه مادرش برگرده و شیهی بکشه هر کس که روی اسب سپا باشه اسب به زمینش میزنه و هفتاد متر به زیر زمین میره فردا کچل اومد و حال و حکایت رو پرسید دخترم همه چیزی که شنیده بود برای کچل تعریف کرد کچلم رفت کنار دریا و مشتید جو پاشید و منتظر شد تا جوها سبز بشه بعدم چند روز کشید داد تا یک روز اومد دید که بله جوها سبز شده و از به پام اومده و پشت سرش هم سه تا اسب سپا بود کچل هم که منتظر این موقعیت بود سریح اومد کمندش رو انداخت و اسب شیشپا رو گرفت کچل سوار بر اسب اومد دم قصر و دختر پادشاه رو ترک اسب نشوند و رفت دیو زرد خبردار شد با اسب سپا دنبالشون رفت همینطور که دیو زرد به کچل و دختر پادشاه که سوار بر اسب ششپا بودن نزدیک میشد اسب تا کره را دید چنان شیههای کشید که اسب سپا دیو زرد زردو به زمین زد و دیو زرد هفتاد متر فرو رفت به زیر زمین کچر و دختر از شش ششپا پایین اومدن و اسب رو به حال خودش رها کردن اسب هم کرنش رو برداشت و رفت به جایی که از اونجا اومده بود کچر و دختر اومدن به شهر خودشون و خوردن و نوشیدن و به مراد دلشون رسیدن